دوستان، آیا تعجب نمی کنید که چرا خیلی از کسانی که خودشون رو مسیحی می‌دونن زندگی شکست خورده ای دارن؟ خب، در درس امروز در کتاب یوشه معلم ما توضیح میده که چطور باید دارایی‌های های روحانیمون رو که خدا به ما داده بطلبیم و تصرف کنیم. حالا به درس امروز معلممون گوش می‌کنیم. کتاب یوشع تصویر بزرگی مربوط به اینه که ایمان چیه و چطور کار میکنه. همونطور که قبلا دیدیم، کتاب اعداد کتابی است درباره ایمانی. کتاب یوشع برخلاف اون هست. کتاب یوشع کتابی درباره ایمان. پیشوند خارج شدن در زبان یونانی کلمه اکس هست. به این دلیل که ما گفتیم کلمه ایکسدس به معنی راه خروج است، چون که اونها در اون کتاب از مصر خارج شدن. در کتاب یوشه، اونها وارد سرزمین کنعان یا سرزمین وعده میشن همینطور که وقایع وارد شدن اونها به سرزمین کنعان رو مطالعه می کنیم مثال بزرگ زیادی از ایمان میبینیم دست کم 16 مثال جداگانه درباره ایمان در این کتاب میبینیم در کتاب یوشه وقتی همه اون مثالهای مربوط به ایمان رو کنار هم قرار میدید میتونید ایده بسیار عالی به دست بیارید که چطور دارایی‌های روحانی خودتون رو تصرف کنید؟ یا چطور میتونید از خدا عطایا دریافت کنید که برای انجام هر کار نیکی امکان فراهم کنه که به فراوانی داشته باشید؟ اولین چیزی که در کتاب یوشه میبینیم، چیزی که بهش انتقال ایمان میگیم. ما میبینیم که ردای رهبری از موسی به یوشه منتقل میشه. کتاب مقدس میگه و یوشه ابن نون از روح حکمت مملو بود چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسا امر فرموده بود عمل کردند و واقع شد بعد از وفات موسا بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسا را خطاب کرده گفت موسا بنده من وفات یافته است پس الان برخیز و از رود اردن عبور کن تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل می دهم، هر جایی که کف پای تو گگذارده شود به شما دادهام. همانطور که به موسی گفتهم تو رهبر جدید اسرائیل هستی. قوم مرا رهبری کن. قوی و دلیر باش زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. یعنی چون تو رهبری موفق خواهی بود. پس ناتحس فقط قوی و دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز ننما تا هر جایی که روی کامیاب شوی. یعنی اگر مراقب باشی و از خداوند اطاعت کنی در هر کاری که بکنی موفق خواهی شد. مرتباً قوانین خدا را به قوم یادآوری کن و خودتون نیز باید شبان روز در آن تفکر کنی. تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی زیرا همچنین نام خود را پیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد یعنی اگر در کلام خدا تفکر کنی و به همه آنها عمل کنی در تمام کارهایت موفق خواهی شد پس قوی و دلیر باش زیرا در هر جا که بروی یهو و خدای تو با توست اینجا حقیقت بزرگی درباره رهبری در کتاب مقدس میبینیم قصد خدا اینه که هر رهبری باید جانشینی برای خود تربیت نماید هر پولسی باید تیم تاوس خود را داشته باشد کار این مورد رو به زیبایی در زندگی موسا و یوشع میبینیم ما در این انتقال رهبری میبینیم که زمانهایی بوده که موسی رهبری میکرده و یوشع پیروی میکرده اما حالا یوشع رهبری میکنه و قوم از یوشع پیروی میکنن این نشون میده که کسی کار درستی انجام داده در این مسئولیتی که به یوشع داده شده که او رهبر قوم خدا شده شما تصویر زیبایی از ماهیت ایمان میبینید. توجه کنید که تأکید بر روی کلمه اطاعت هست. تو باید اطاعت کنی. تو باید عملاً وارد سرزمین وعده بشی و قوم مرا رهبری کنی تا کنان فتح کنند. این مربوط به اطاعت هست. ایمان در کتاب یوشع ایمان مطیع است. ما همینطور در بابهای چیزی رو می بینیم که میتونیم بهش پیچیدگی ایمان یا پیچیدگی مشکلات ایمان بگیم. اگر ما سعی کنیم تمامی مشکلات ایمان رو رفع کنیم نیاز به خود ایمان رو از بین می بریم. وقتی ما ایمان رو مطالعه می کنیم، نباید نگران باشیم که کی بر مشکلات قلبه می کنیم. شخصیت راهاب در یوشه با به دو برای بسیاری از مردم مشکل به وجود میاره. فرض کنید شما مثل کوry تنبوم، در جنگ جهانی دوم در هلند باشید و خدا به قلبتون بذاره که چند یهودی رو در زیر زمین یا اتاق زیر شیروانی مخفی کنید. فرض کنید شما توسط خدا متقاعد شدید که کشتار یهودیان مطلقاً وحشتناکه و در نظر خدا یک پلیدیه. فرض کنید که خدا در قلب شما گذاشته یهودیان رو در خانه خود پنهان کنید و روزی گشتاپو به خانه شما میاد. اگر گشتپا در خانه شما رو میزد و وقتی در رو باز میکردید اونها میگفتند آیا یهودی اینجا هست شما چی میگفتید وقتی در دانشکده الهیات مسیحی فلسفه میخونید، دیر یا زود شما به مبحث اخلاقیات میرسید شما همیشه میخواهید که این سوال رو بپرسید برترین اخلاق مسیحی چیه آیا برترین اخلاق مسیحی صداقته که همیشه راست بگید و دروغ نگید میتونید بگید که من یه مسیحی هستم نمیتونم دروغ بگم این یهودیان رو ببرید، و اونها رو بسوزونید. به محض اینکه اونها یهودیان رو بیرون ببرن، اونها رو میکشند و میسوزن. و شما اونجا میستید و میگید من اونقدر درست کار هستم که وقتی شما اینجا آمدید نتونستم دروغ بگم. در مورد این یهودیا خیلی کار بدی کردید اما من راستگو هستم. آیا این برترین اخلاق یک مسیحیه؟ در داستان راهاب به فایش درباره دوم کتاب یوشه راها به اون سؤال پاسخ میده. اَدی یهودی به خانه او آمدند و آنها را مخفی کرده. وقتی که مأموران آمدند و دنبال این یهودیان می‌گشتند، او مأموران را به سمت دیگری فرستاد. به او فرمان داده بودند. در عهد جدید ما در باب یازدهم کتاب ابرانیان میخونیم که راهاب به فاحشه یک قهرمان ایمان هست یک شیرزن راهاب زندگی خودش را با کاری که کرد نجات داد. وقتی که مأموران را به مسیر غلطی دنبال نخصیا فرستاد، بسیاری از مردم با این مسئله مشکل دارن. اونا میگن بذارید ببینم. به من یاد دادن که صخره صداقت باشم. اینجا فاهشه ای رو داریم که دروغ گفته. منظورم اینه که او دروغ گفته. با این حال به خاطر دروغی که گفته در لیست قهرمانان ایمان قرار گرفته. اونا به سادگی نمیتونن این رو درک کنن. این مشکل بزرگی برای خیلی‌ها هست. اما اگر از نزدیک به داستان نگاه کنید، به این دلیل نبود که چون راهاب دروغ گفت قهرمان ایمان شد. باب یازدهم ابرانیان میگه با ایمان بود که راها به فاهشه همراه با ناموتیان کشته نشد. ببینید، وقتی اون جاسوسان یهودی به خانه راها به فاهشه آمدن، او چیزی به آنها گفت که ایمانش رو نشون میداد. او به اونها گفت، میدانم که شما نمایندگان خدای حقیقی زنده هستید. بسیاری از مردم اینجا از شما به شدت میترسند. ما ایمان داریم که خدا با شماست. او گفت، گوش کنید. قول بدید وقتی وارد این سرزمین شدید منو نخواهید کشت اونها با او پیمان بستند اونها گفتند این ریسمان قرمز رو بگیر و اون رو به پنجره خانهت ببند خانه او در دیوار عریها بود دیوار بسیار عریز بود و خانه بر بالای اون ساخته شده بود و البته اون ریسمان قرمز که از پنجره او آویزان بود تصویر زیبایی از نجات هست مثل کشتی نوح که در کتاب پیدایش دیدیم اونها به او گفتند این ریسمان رو به پنجرهت ببند و هر کسی که با تو در این خانه باشد تمامی عزیزان تو نجات خواهند یافت. همه در عریها کشته خواهند شد اما شما نجات خواهید یافت. او چرا نجات یافت؟ چون که جاسوسان را مخفی کرد و به خاطرشون دروغ گفت. نه به خاطر اینکه او ایمان داشت که اون اشخاص جز قوم خدا هستند و خدای زنده حقیقی با اونها هست. راهاب ایمان خودش رو به خدای زنده حقیقی اعلام می کنه. این ایمان او بود که او رو نجات داد. اتفاقاً به خاطر اینکه چنین ایمانی داشت او در نامه ایسای مسیح قرار گرفت به اعتقاد من اون ریسمان قرمزی که از پنجره او آویزان شده بود باید بهش تصویر ایمان بگیم پس در بابای نخست کتاب یوشه ما اولاً انتقال ایمان از موسا به یوشه رو میبینیم، بعد ما پیچیدگی ایمان رو میبینیم و بعد همینطور تصویر زیبایی ایمان وقتی راهها به فاحشه رو مطالعه می فراموش نکنید که مهمترین چیز درباره او ایمان بود. این ایمان او بود که او را نجات داد. ببینید همه با ایمان نجات پیدا کردند. این راهاب تبدیل میشه به جد مادری عیسی. در باب سه شما اثبات ایمان رو خواهید دید. این حقیقت رو در نظر داشته باشید که وقتی به کتاب یوشع می رسید این مطالعه درباره ایمان هست. وقتی خدا سعی میکنه که به ما ایمان بده که وارد سرزمین کنعان روحانیمون بشیم و برکات روحانیمون رو بطلبیم خدا اغلب اوقات ایمان ما رو اظهار و تایید میکنه تا ما رو دلگرم کنه وقتی به جتعون برسیم این رو خواهیم دید که پوست پشمینی رو برای گرفتن تایید از خداوند بیرون نهاد و خداوند به وسیله اون پوست به او اطمینان داد مزبور 37 23 میگه اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد گامهایش را استوار میسازد. یعنی وقتی که ما گامهای ایمان برمی‌داریم خدا به اون گام های ایمان ما برکت میده و تایید میکنه تا ما رو دلگرم میکنه که بدونیم در راهی گام برمیداریم که او ما رو در اون راه هدایت میکنه دلیلی که خدا با اون قوم در بیابان در کتاب اعداد به شدت برخورد کرد این بود که گفت من ده بار به شما ثابت کردم ده بار معجزه به عمل آوردم و به شما ثابت کردم اما شما ایمان شایسته رو نشون ندادید اگرچه من به شما ده بار ثابت کرده بودم پس خدا گام های ما رو تایید کنه. او در کتاب یوشه این کار رو می کنه. خدا یوشه رو تایید کنه. و به قوم توضیح میده که برکتش همانطور که بر موسی بود بر یوشه نیز هست. بعد همینطور برای قوم معجزاتی به عمل میاره. هدف از این معجزات این بود که به قوم نشون بده که خدا با اونهاست. و وقتی که اونها از رود اردن عبور کنند و وارد سرزمین کنعان میشن، اونها رو برکت میده. و همراه اونها هست. در باب چهار، اونها چیزی را بنا کردن که بهش پایه ایمان میگه وقتی که از رود اردن عبور کردند اگرچه رودخانه تقیان کرده بود آبها به طور معجزاسایی شکافته شد و اونها از زمین خشک عبور کردند درست مثل تجربه اونها در چهل سال قبل در دریای سرخ وقتی اونها از رود اردن بر روی خشکی عبور کردند به اونها فرمان داده شد که چیزی مانند ستون سنگی بسازند چیزی مثل یک یادواره یاد بودی برای این موجزه بزرگ، اینجا باز هم همون پیغام رو می بینید که در تصنیه دیدید. این به این خاطر هست که فرزندان شما از این موجزه آگاهی پیدا کنند. روزی فرزندان شما از شما خواهند پرسید اون ستون سنگی در اونجا چیه؟ وقتی از شما پرسیدند، شما به اونها بگید. این اصل خوبی برای تربیت فرزندان هست. فقط به سوالات اونها جواب بدید. ابراهام ل میگفت می گفت اگر شما حس کنجکاوی و حافظه دارید پس تعلیم خواهید گرفت. این فقط به زمان نیاز داره. بچه ها معمولا کنجکاوی سالمی دارند. ما باید با جواب دادن به این کنجکاوی اونها این رو تصدیق کنیم. هدف از ساختن این یادواره این بود که بزرگها شاید اون رو به خاطر بیارن اما بچه ها باید اون رو بدونند. در باب پنج شما چیزی رو می بینید که بهش لازمه ایمان میگییم. حمله به آن، قریب الوقوع بود. درست قبل از حجوم به کنعان و اونها فرمان داده شد تمامی جماعت مردان ختنه شوند. دلیل عملی برای ختنه این بود که نسل دوم مردان هرگز ختنه نشده بودند. خاطرتون هست که نسل اول در بیابان مردند. این نسل نسل دوم قوم خدا بود و مردان ختنه نشده بودند. اینجا شما تصویر زیبا و بینشی از ایمان میبینید قبل از اینکه وارد سرزمین برکات وعده خداوند بشید آیا گناهی در قلبتون هست؟ آیا چیزی هست که از خودتون جدا کنید و از اون توبه کنید؟ توبه اون مذبح توبه که ابراهیم ساخت، مذبحی که بسیاری از مسیحیان از کنارش عبور میکنند. اونها نمیدونن چرا شیفته دنیا هستند. اونا متوجه میشن که هرگز برخورد قاطعی با گناه نکردند. اونا هرگز اجازه نمیدن که خدا با گناهان زندگی اونها برخورد کنه. شما قبل از اینکه بتونید برکات خدا را تجربه کنید، باید از گناهان زندگیتون توبه کنید و با خدا همراه راه پشید. این مفهوم کلی فرمان خطنه جماعت مردان هست. اون یک نماد بیرونی از تعهدی درونی هست. درست مثل تعمید در عهد جدید. در باب پنج کتاب یوشه شما همینطور چیزی رو می بینید که بهش فرمان ایمان میگیم این رو در پایان باب می بینیم. فرمانی صادر کرده بود که هیچ کس نباید شمشیرش را از غلاف بیرون می آورد. حتی امروزه هم این مکانها شب‌های شبهای بسیار بسیار تاریکی داره برای ما که توی شهرها با خیابونهای روشنی زندگی میکنیم تصور این خیلی سخته که بتونیم درک کنیم تاریکی در بیابان یعنی چی؟ جایی که مطلقا هیچ نوری نیست ارتشی که در شرق اردن در تاریکی مطلق اردو زده میتونه به راحتی توسط دشمن قافلگیر بشه بنابراین اونها معمولا فرمانی صادر می‌کردند که شمشیرهاتون رو از غلاف خارج نکنیم اگر کسی رو می که شمشیرش از غلاف خارج شده بلا فاصله می که او دشمن هست و می به سرعت واکنش نشون بدن حالا یوشه برای گشت شبانه یک شب قبل از نبرده عریها بیرون رفته او با مردی با شمشیر برهنه روبرو می شه یوشه او را تحت فشار قرار میده. به او میگه آیا تو دوستی یا دشمن؟ و او در جواب میگه من سردار لشکر خداوند هستم ما در کتاب یوشه می خونیم که یوشع در مقابل این مرد سجده میکنه و پرستش میکنه و میگه آقایم به بنده خود چه میگوید. سردار لشکر خداوند میگه نعلین خود را از پایت بیرون کن زیرا جایی که تو ایستاده ای مقدس هست و میبینیم که یوشه این کار رو میکنه. ما وقتی که عهد قدیم رو بررسی میکنیم میبینیم که همه مردان خدا هر کدوم برای خود تجربه فردی روحانی داشتند. تجربه یوشع این بود. این تجربه چیزی هست که الهیدانان بهش تجلی خدا میگن ظهور خدا به شکل یک انسان این در مورد او به شکل یک سرباز بود که تبدیل به سردار لشکر خدا شد من نمیدونم یوشه چی دید که متقاعد شد که او خداوند بود اما یوشه بلا فاصله تشخیص داد که او خداونده و به سجده افتاد این سردار لشکر رو پرستش میکنه و به او میگه آقایم به بنده خود چه میگوید. فرمانهایی که به یوشه داده شد چالش بزرگی بود یوشه بعدها در دومین نبرد در آی به عنوان یک نابغه نظامی توصیف شده. این اولین ماموریت نظامی یوشه به عنوان رهبر قوم خدا بود. البته او میخواست که نبوغش رو به لشکرش ثابت کنه اما این بار این سردار لشکر خدا که خود خداوند بود به او یک نقشه نبرد مزهک داد. یوشه برای اجرای این نقشه نظامی احتمالاً با چالش بزرگی روبرو بوده. البته این برای آزمایش ایمان بود. باب یازدهم کتاب ابرانیان در عهد جدید به ما میگه که دیوارهای عریها با ایمان فرو میریزه. وقتی میبینیم که یوشه این نقشه مزهک نظامی رو مو به مو اجرا میکنه، درک میکنیم که ایمانی که سبب شد دیوارهای عریها بریزه، ایمان یوشه بود. بر طبق باب شش کتاب یوشا، یک شب قبل از نبرد، یوشه از خداوند این نقشه نظامی رو دریافت کرد. این نقشه ای که در باب شش مو به مو اجرا شده و اونها فرمان داده شده که از اردوگاه بیرون بیاند و دور شهر علی ها رژه برن. قبل از همه باید تمامی مردان مسلح پیشاپیش پیش می رفتن. بعد هفت کاهن در حالی که کرنای یوبیل رو می نواختن می رفتن و بعد کاهنانی که تابوت عهد رو حمل می به دنبال آنها روانه می و بعد ساقه لشگرد و شاید حتی تمامی جماعت از عقب تابوت روانه می شدند. روز اول اونها یک بار دور شهر رجه می رفتن. بعد به اردوگاهشان باز گشتند و شب را سپری میکردند، صبح روز بعد باز همون چیز تکرار میشد اونها این کار رو تا هفت روز تکرار کردند و بعد به اونها فرمان داده شد که در روز هفتم هفت بار دور شهر رجه بروند جمع دفعاتی که به اونها فرمان داده شد دور شهر رجه برن 13 بار بود این نقشه نظامی مضحکی بود چون که وقتی اونها به این شهرهای مستحکم حمله میکردند دیوارها ها اونقدر عریض بود که میتونستند روشخانه خانه بسازند. دشمن معمولا کسانی رو داشت که از شهر دفاع میکردند. تمامی زنان و کودکانی که نمیتونستند سلاح حمل کنند بر بالای دیوار میست و با زغالهای گداخته و تخت سنگ ها از شهر دفاع میکردند. اگر دشمن به جایی در نزدیکی دیوار میرسید، اونها زغالهای گداخته و تخت سنگ ها رو بر روی اونها میانداختند. یک سردار بزرگ به نام ابی به خاطر اینکه در موقع حمله خیلی نزدیک دیوار شهر رفته بود کشته شد ما این رو در کتاب داوران می‌بینیم یک پیرزن تخت سنگهایی داشت که حدود نیم متر مربع اندازه داشتن او با این سنگها قلات رو آرد می‌کرد اون پیرزن سنگ آسیا رو برداشت و بر روی سر ابی ملک انداخت و کاسه سرش رو شکست و ابی ملک به صلاحدارش گفت شمشیر خود را کشیده مرا بکش مبادا درباره من بگویند زنی او را کشت او ابی ملک رو با شمشیر کشت تا کسی نتونه بگه زنی او را کشت این عبرتی برای سرداران لشکر اسرائیل شد که هرگز نزدیک دیوارهای شهر نروند چرا که دیدند ابی ملک چگونه توسط یک پیر زن کشته شد میبینید که خدا به یوشه گفته بود چیکار کنه تمامی قومت رو نزدیک دیوار ببر تا دور دیوار رژه برن تمامی قومت رو در مقابل اون دیوار بی پناه بذار نه تنها یک بار بلکه 13 بار در تمامی مدتی که اونها اطراف شهر عریها رژه میرفتند و اونها گفته شده بود که کلامی بر زبان نیاورند. باید سکوت کاملی بوده باشه به جز این هفت کاهنی که کرن‌های یوبیل رو مینواختند. این تنها صدایی بود که از اونها شنیده میشد. خودتون رو بر بالای دیوار عریها تصور کنید. ارتشی با چنان شهرتی رو می بینید که نزدیک میشن. همونطور که راهاب گفت، اهالی عریها العاده از اونها می‌ترسیدند و اونها احترام می‌ذاشتند. شما با خودتون میگید خدای من اونها دارن درست به طرف دیوار میان اونها توی اون تابوت چی حمل میکنن آیا توی اون سلاحی سری هست آیا اونها دیوار رو منفجر خواهند کرد یا جریان چیه اون شیپورهای مزهگ کوچک که کاهنان مینوازند چیه اونها احتمالا روی دیوار از این چیزها صحبت میکردن بعد از اینکه بنی اسرائیل دور شهر رژ رفتن اونها دوباره به پناهگاههای خود بازگشتند من مطمئنم که اون شب در شورای سرداران عریها اونها کلی وقت صرف کردند تا بفهمند که اسرائیلیها چیکار میکنند منظور این مردان چیه روز بعد همون کار تکرار شد مردم شهر احتمالاً پر از ترس و بیم بودند چون که هیچ چیزی به طرف اسرائیلی ها پرتاب نکردند مردم عریها احتمالاً تعجب کرده بودند اونها دنبال چی هستند بعد از یک بار رژه رفتن دور دیوار عریها به مدت شش روز در روز هفتم بنی اسرائیل هفت بار دور دیوار عریها رژه رفتن. بعد از هفت بار رژه رفتن دور دیوار در روز هفتم یوشه رو به مردم کرد و فرمان داد فریاد بزنید چیزی بین دو تا سه میلیون نفر فریاد زدند تا حالا شنیدید هزاران نفر همزمان با هم فریاد بزنند؟ صدای خیلی زیادی تولید میکنه چیزی بین دو یا سه میلیون نفر در ارتش اسرائیل وجود داشت صدایی رو که اونها همزمان با هم فریاد میزدند تصور کنید. بعضی از الهیدانان محافظ کار میگن که رجه رفتن اونها در اطراف شهر سبب لرزشی شد که باعث شد دیوار فرو بریزه. بعضی ها میگن این صدای فریاد بود که باعث شد دیوار فرو بریزه. همونطور که در دریای سرخ دیدیم باور کردن به بعضی نظریات محافظ کارانه ایمان بیشتری میخواد تا باور کردن به معجزات. خدا رو شک که کتاب ابرانیان این موضوع رو برای ما میکنه. کتاب میگه دیوارهای میک با ایمان فرو ریقت. من هم ایمان دارم که این دقیقا همون چیزی بود که باعث شد دیوارها فرو بریزه ایمان مخصوصاً ایمان یوشه یوشه به دنبال این بود که تمام اون قوم رو رهبری کنه به اعتقاد من لازمه این ایمان بود ایمان میخواست که همه اون مردم رو بی در کنار اون دیوار قرار بده دیوارهای عریها بی اندازه عریض بود اگر امروز بتونید برید و حفاری‌های دیوار علیها رو ببینید به نظر میرسه که هنوز پا بر جای اما در واقع اونها با خاک یکسان شدند. وقتی دیوارهای عریها رو میبینید میفهمید که اونها ویران شدند. اونها با خاک یکسان شدند. به نظر میرسید که زلزله شده اگر ای بوده به زمان زلزله توجه کنید وقتی که یوشه با تمام جزئیاتش از خداونده تاعت کرد یک زلزله شد و زلزله دیوار رو بلعید زمین باز شد و دیوارها فروریه. چون ما میخونیم که کتاب مقدس میگه حسار شهر به زمین افتاد و هر کس پیش روی خود به شهر برآمد معنیش اینه که زمین باید تمام دیوار رو بلعیده باشه. اما اگر یک معجزه میتونسته سبب زلزله بشه اون زلزله باید زمین لرزهی موجزه بوده باشه. مثل ای که در فیلیپیان اتفاق افتاد وقتی که زندان فیلیپی شکسته شد تا اینکه زندانی‌ها زندانی ها بتونن فرار کنن. کاربرد عملی داستان یوشه و نبردری ها چیه؟ به اعتقاد من کاربرد عملی اون اینه وقتی که یوشا قوم رو سیزده بار دور دیوار شهر هدایت کرد و نقشه ای داشت. به لحاظ نظامی اون نقشه مزهک بود. یوشا میدونست که یک نقشه نظامی کارآمد چیه. او یک نابغه نظامی بود. چرا یوشه از اون نقشه مو به مو اطاعت کرد؟ او از اون نقشه پیروی کرد چون یک چیز رو در مورد اون نقشه میدونست. می میدونست که اون نقشه نقشه خداست میدونست که خدا گفته این کارو بکن پس اگرچه به نظر می میومد باز هم یوشه اون رو انجام داد یوشه بابشش درست مثل تمام کتاب یوشه به ما میگه که ایمان چیه و چطور کار میکنه یوشا باب در داستان نبرد علیها نوع ایمان رو شرح میده که این امکان رو برای ما فراهم میکنه وارد سرزمین وعده روحانیمون بشیم و عطایا رو دریافت کنیم تا زندگی خداشناسانه ای بکنیم این نوع ایمان ایمان عملی هست این ایمانیه که راه میره درست مثل یوش سیزده بار دور عریها راه رفت درست مثل تمامی اون مردمانی که سیزده بار دور عریها رژه رفتن این ایمان, ایمان ایمان عملیه ایمان چیزی ذهنی یا مرموز نیست مفهوم ایمان این نیست که تمام اون مشکلات رو درک بکنیم ایمان اطاعته اطاعت نشانه ای از ایمانه چون ایمان گام برمی داره در داستان عریها کاربرد واقعی اینه ایمانی که متحرک هست ایمانی که کار میکنه و اون نوع ایمان برنده نبرد هاست ایمانی که در نبرد عریها پیروز شد ایمانی که در عریها کار کرد ایمانی که دور دیوار عریها رژه رفت حالا نمیدونم آیا ایمان شما از این نوع ایمان هست؟ آیا فکر می کنید که اون ایمان موضوعی اقلانی هست؟ عیسی در راحت جدید به ما گفته که کلام او کلام هر استادی نیست که بر سر راهتون قرار میگیره او گفت کلامی که من به شما می آموزم کلام خداست وقتی مردم در باب هفتم یوحنا پرسیدند و گفتند از کجا این رو بدونی عیسی گفت اگر کسی به راستی بخواهد اراده او را به عمل آورد در خواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود میگویم منظور عیسی این بود که اگر شما واقعاً بخواهید بدونید باید اراده او را انجام بدید این دقیقاً برخلاف روشیه که روشنفکران میخواهند به مسائل بپردازند روشنفکران دوست دارند بگن اول از نظر من منو قانع کنید و بعد من شما رو با اراده پیروی خواهم کرد اما عیسی گفته نه راه درستش اینه شما خودتون رو با اراده تسلیم کنید اون وقت از نظر اقلانی قانع خواهید شد اول خودتون رو تسلیم کنید اول دور دیوار عریها راه برید و بعد خواهید فهمید که ایمان کار میکنه و پیروز میشه اما اول باید تن به راه رفتن بدید روشنفکران قرن هاست که واقعا به نسل ها میگن که ایمان از دیدن به وجود میاد در مزمور 27 کتاب مقدس داوود که سالهای زیادی زندگی کرده اون رو اینطور بیان میکنه و میگه اما من باور دارم که نیکوی خداوند رو در زمین زندگان خواهم دید فکران میگن ایمان در نتیجه دیدن هست اما خدا همیشه گفته ایمان ما را به دیدن هدایت میکنه من فکر می کنم این چیزی که ما در مثال عریها میبینیم می بینیم وقتی که بنی اسرائیل با ایمان به سیزده بار رژه رفتن دور دیوار عریها تندر دادند اونها به خدا ثابت کردند و خدا هم به اونها ثابت کرد من مردی رو می شناسم که خدا او رو دعوت کرد تا یک ایستگاه رادیویی در کویتو پایتخت اکوادور بسازه او مردی بود که با خدا راه میرفت. اسم او دکتر کلارنس جونز بود او ایستگاه رادیویی HCGB رو در کویتو پایتخت اکوادور تأسیس کرد دکتر جونز میگفت روزی خدا در قلبش گذاشت که برجی بسازه که بتونه امواج رادیویی او رو به بالاترین نقطه کوهی مشخص برسونه او میگفت که خدا به طور کامل و واضح به اون نشون داد که او باید برجش رو بر بالای اون کوه بسازه دکتر جونز این حس دریافت از خدا رو رادار الهی میگفت. او اظهار میکرد که از طریق این رادار الهی خدا به او دقیقا نشون داده که آنتن باید کجا ساخته بشه. مهندسانش به وی گفتند که آقای کلارنس این اشتباهه. اینجا پر از مواد معدنیه که قدرت مغناطیسی اونها بر روی امواج رادیویی تأثیر میذاره و باعث میشه که امواج جایی نرند. دکتر جونز به اتاق دعای خود برگشت و دعا کرد و خدا باز هم گفت همون کو اون جاییه که باید برج ساخته بشه دکتر جونز ایمانی داشت که برخلاف توصیه مهندسانش و متخصصانش عمل کرد و گفت برج رو روی همون کوه میسازیم. مواد معدنی که مهندسین گفتند امواج رو نابود خواهد کرد کاملا برعکس عمل کرد مواد معدنی امواج رو دفع کردند و امواج به سراسر دنیا رسید از دکتر جونز خواسته شد که درباره این معجزه الکترونیکی که او با بنای برج بر روی اون کوه کشف کرده بود در سراسر دنیا سخنرانی کنه. طوری با او رفتار می‌کردند که گویی یک نابغه است. در اغلب اون مجامع دکتر جونز موعظه کرد که عنوانش رادار الهی بود. من از کسانی که هنوز به رادار الهی ایمان دارند متشکرم. من به رادار الهی ایمان دارم. من ایمان دارم که هنوز برای خدا این امکان هست که با ما صحبت کنه. هنوز برای خدا این امکان هست که نقشش رو برای من بازگو کنه و به من چیزی رو بگه که میخواد انجام بدم. گاهی خدا عمدن ایمان ما رو با نقشه های خودش آزمایش میکنه کنه همونطور که در مورد نبرد عریها یوشه رو آزمایش کرد به لحاظ نظامی نقشه ای که به یوشه داد مزهک بود خدا ممکنه به ما نقشه مثل اون بده که ایمان ما رو آزمایش کنه اگر خدا رو به حد کافی بشناسید میتونید به رادار الهیتون اعتماد کنید و بدونید خداست که به شما گفته این کار رو بکنید هر چیزی که او به شما میگه انجام بدید مادر عیسی این رو به پیشخدمتی در قانای جلیل گفت. هرچی که او به شما میگه انجام بدید. اگر میدونید که خدا به شما میگه کاری رو بکنید، همیشه با انجام اون در امان خواهید بود. خدا همیشه اینطور عمل نمیکنه کنه. ما در نبرد دوم آی میبینیم که یوشه اونجا نشون میده که یک نابغه نظامی هست. خدا خدای نظم و تدبیر هست. او نخشه ای داره که به طور عجیب و مهیبی شده. زمانهایی هست که خدا ایمان ما را آزمایش میکنه همونطور که ایمان یوشه را آزمایش کرد. هرگز فراموش نکنید. هر حال وقتی به کتاب می میرسید باب شش در قلب این کتاب به ما میگه که ایمان چیزی عملی هست. این ایمانه. ایمانیه که پویا هست، ایمانیه که کار میکنه و ایمانیه که هنوز در نبردهای زندگی پیروز میشه. عزیزان، که در درس دیگری باز هم با ما همراه بودین. دعای ما اینه که شما در دانش و ایمانتون رشد کنید تا نه تنها بدونید بلکه برکات روحانی رو که خدا براتون داره از او بتلبین. تا برنامه بعدی فیض او شما رو دلگرم کنه و در سفر ایمانیتون شما رو حفظ کنه.